بخش دوازدهم. آن شب تلویزیون یک فیلم خارجی بیداد گذاشته بود حتما شما هم آن را دیده اید آقا و خانم اسمیت از چهار روز پیشش یک بند داشتن برایش تبلیغات میکردند حساب کردم که اگر این تبلیغاتشان را خرج هر چیز دیگری کرده بودند کلی برایشان نان میکرد به نظرم نباید با این کارها برای پخش فیلمی که تازه خودمان هم نساخته ایم سر مردم بگذاریم. آن همچه یا جای خوشمزش را سانسور میکنند یا اینکه داستان فیلم را از بیخ عوض میکنند. تا حالا هزار دفعه به روابط عمومیشان زنگ زدم، اما به هیچ سراتی مستقیم نمیشوند. خودشان اصل فیلم ها را با کیفیت آیه نمیبینند به ما که میرسد سراتاش را قیچی میکنند. هنوز ده دقیقه از فیلم نرفته آقا شبکه را عوض کرد. کارش همین است وقتی اخبار که میرسد رسد کارش همین است انگار نه انگار که یک گله آدم دارم فیلم می بینند مامان که قربانش بروم زبانش را موش خورده است هم که بابای آنچانانی بالای سرمان نیست که چهار جا حرفمان را پیش ببریم اما قصد دارم یک روز با زبان بیزبانی زبانی ملتفه کنم که توی خانه ای که یک تلویزیون 14 اینچ بیشتر نیست لااقل اخبار همه شبکه ها را تماشا نک کاری که باید بکند این است که هوش و حواسش را جوف کند و با همان یک اخبار همه ی خبرها را بقاپد. آن شب درست نخوابیدم. مدام زیر لحافین می می‌شدم. چند تا تصویر ذهنی توی مخم بود که از دستشان خلاصی نداشتم. دست ندارم ذهنتان را منحرف کنم. منظورم همان چیزهایی است که قبلا راجع حرف زدم. فردا طرفهای ظهر دو بار و سر و گفت که ترتیب ای را برای پس فردا داده است. خانه یزگن. دنیا روی سرم خراب شد. پرسیدم، لاله هم میاد؟ به این سوالم عادت کرده بود. گفت، آره، مثل اینکه ولی چندان فرقی نکرد. دنیا از قبل روی سرم خراب شده بود. من به هیچ قیمتی نباید دوباره آن طرف ها آفتابی می شدم. این بار اگر پام به خانه آن اسکندر هیچی ندار باز می شد، دخلم را می آوردند. گفتم، حالا آره مطمئنی باید رفتم همونجا حرف رو ببینی. خب آره دیگه یعنی چی؟ هیچی گفتم شاید بخوایم بریم آریا شهری، جایی؟ پوسته سرم داغ شد. قبلا هم گفته بودم که هیچ علاقی به دیدن اسکندر و آن هم پالکی‌های احمقش ندارم. ولی حسن به هیچ جایش حساب نکرده بود. لعنتی یا قصد داشتن از موقعیت میزبانی استفاده کنند. برای همین هم هست که تمام قرار و مدارهایشان یا توی خیابان هست یا توی خانه خودشان که مبادا یک وقت اوضاع از کنترلشان در برود. مثل جهود ها میمانند هزار جور رمز و راست توی کارشان دارند اولش خواستم قبول نکنم اما اینجور جفنگ پرانی ها به گیر نگیر دارد نمیشد رئیس کرد حالا با چه حالا روزی با خودم کنار آمدم خدا عالم است. دوباره پرسیدم آره قول دادی یا؟ آره بابا قول دادم قول قول؟ لپش را پر از باد کرد و فوت قایه می کرد قول قول گفتی کی باید بریم؟ پنجشنبه پس فردا. بدون که بدونم دقیقا چه ساعتی باید برویم گفتم. پس دیر نکنی ها؟ من گفت. پنجشنبه ساعت چهار فردا.